های فولکلور ارمنستان، نوشته گگییس آغاسی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی، گوینده فرید حامد این داستان، طول خرس میگویند کاهنی بود که قدرت و نیروی شگرفی داشت. به طوری که هر روز بنای معبد رو پشت خودش می و به جنگل میبرد در آنجا عبادت میکرد. و بعد معبد رو به ده برمیگردوند یه روز که معبد رو به همین شکل به جنگل برده بود، طول خرسی رو دید و طول ازش سال کرد چرا معبد رو به اینجا آوردی؟ کاهن جواب میده معبد رو آوردم تا در اون کنیم طول خرس گفت پس معلوم میشه که خیلی نیرومند هستی پس اگر میتونی بیا با هم کشتی بگیریم و هر کی که پشت اون یکی رو به خاک رسوند میتونه اونو بخوره کاهن با اطمینان خاطر آستینش رو بالا زد و گفت بسیار خوب من حاضرم تا هرچی که تو بخوای انجام بدم طول خرس و کاهن یقه همدیگر رو گرفتن طوله که به مراتب قوی تر از حریف بود اونو بلند کرد و به سهولت نقش زمین کرد و درست موقعی که قصد خوردن اونو داشت کاهن به اجز و لابه پرداخت و گفت تو رو خدا من نکش من تو رو به خونم خواهم برد و اگر مرا رو کنی از تو مراقبت میکنم طول خرس موافقت کرد و هر دو به ده برگشتند و کاهن معبد رو در جای همیشگی خودش قرار داد اما طول خیرس اشتهای عجیبی داشت و هر چیزی که در خونه کاهن بود خورد به طوری که کاهن بخت برگشته مستعصل شد و ناگهان فکری به مخیلش خطور کرد و تصمیم گرفت که طول خرس رو به عنوان هدیه نزد سلطان ببره تا شاید از شر این حیوان خلاص بشه چرا که در غیر این صورت خودش از فرت گرسنگی جون می ده. به این ترتیب کاهن طول خیرس رو برداشت و به عنوان سوغاتی به سلطان تقدیم کرد سلطان از دیدن اون حیوان خیلی خوشحال شد اما دیری نگذشت که فهمید این طول خرس خونش رو خراب خواهد کرد چرا که هر چی که میخورد بازم سیر نمیشد و میگفت کمه سلطان تصمیم گرفت تا اون حیوان رو از سر باز کنه پس وزرای خودش رو صدا کرد و گفت بروید ساحرهای پیدا کنید تا شاید بتواند راهی برای خلاص کردن ما از شر این حیوان بیاورد وزرا دور شدند و ساحرهای پیدا کردند و نزد سلطان آوردند سلطان از ساحره میپرسه که اون طول خرس رو به کجا میشه فرستاد تا دیگه قادر به بازگشت نباشه ساهره پیر و عجوز گفت سلطان به سلامت باد در منطقه هفت قله کوه جنگلی هست و اگر شما این طول خرس رو اونجا بفرستید تا قدر هیزم بیاره دیگه قادر به بازگشت نخواهد بود زیرا اونجا چهل دیو به سر میبرند که این طوله نیرومند رو دیوستی که خواهد کرد سلطان گفت بسیار خوب اونگاه دستور داد که طول خیرس رو به حضورش ببرند و گفت در هفت قله کوه جنگلی هست و من از تو میخوام که با آنجا بروی و یکصد بار باری برایم بیاوری طول خیرس گفت چشم قربان فقط دستور بدید که یکصد عرابه و گاو و عرابه رون و آزوغی کافی در اختیار من بگذارند تا های مورد نیاز رو برای شما بیاورم. سلطان کلیه تاج رو در اختیارش گذاشت. طول خرس یکصد عرابه رو که به وسیله گاو کشیده می‌شدند پیش انداخت و به سوی هفت قله کوه حرکت کرد. و در تمام طول راه آواز می خوند و می‌رقصی. طول خیرس هر شب یه جایی توقف میکرد یه آتشی روشن میکرد و یکی از گاوها رو میکشت و کباب میکرد و میخورد و قسمتی از اون رو هم به اون صد تا عراب ران میداد تا اونها بخورند سپس هر یکی از عرابه های بدون گاو رو به پشت عرابه قبلی میبست و به راه خودش ادامه میداد یعنی که به جنگل رسیدند همه گاوها جزی یکی به دین ترتیب خورده شده بودند و آخرین گاو هم موقع رسیدن به جنگل کباب شد چهل دیوان دودی رو در گوشه جنگل دیدن و سخت به وحشت افتادند آخه چه کسی جرأت اومدن به اون حوالی رو می کرد؟ زیرا نه پرندهی در هوا و نه ماری در زمین جرأت نزدیک شدن به اون جنگل رو نداشت برادر بزرگتر دیوها کوچیکترین برادر خودش رو صدا کرد و اونو فرستاد تا تحقیق کنه و بفهمه که اون دود از کجا میاد برادر کوچیک به گوشه جنگل رسید و متوجه شد که طول خرس و یک نفر دور آتیش نشسته و مشغول خوردن گوشت هستند از فاصله دور فریاد زد و گفت شما کی هستید که در این موقع در جنگل آتش افروخته اید؟ آیا بشر هستید یا جانور؟ به من بگویید، این را هم بدونید که هیچ یکی از شما جان سالم به در نخواهد برد طول خرس از شنیدن این حرف سخت عصبانی شد و فریاد زد نزدیکتر بیا بگذار تا قیافت رو ببینیم و بدونیم که چه موجودی هستی و اون وقت تو هم ما رو خواهی شناخت به محض اینکه دیو به آتش نزدیک شد، طول خرس چوب خودش بلند کرد و ضربه محکمی بر سر اون حیولا زد و اونو بیهوش کرد. بعد وی رو کشون کشون به طرف یکی از ارابه ها برد و به چرخ بست و دوباره به طرف آتیش برگشت و مشغول خوردن شد. وقتی که برادر بزرگ دیوها متوجه شد که برادرش دیر کرده یکی دیگه از دیوها رو برای فهمیدن جریان و کسب خبر فرستاد طول غیرس با اون دیو هم همون معامله رو کرد که با دیو اولی کرده بود و اونو بر روی چرخ عرابه بست به همین ترتیب سومی و چهارمی و پنجمی علق سایر دیوها جز یکی همه به همین سرنوشت دوشار شدند و سی و دیو رو به چرخهای حرابه ها بست سر انجام دیو بزرگ که اثری از برادراش ندید دچار خشم شد و کف به لباورد و برای پیدا کردن اونها از جا برخاست. هنگامی که این هیولا به گوشه جنگل رسید متوجه شد که هر سی و نه برادرش رو به چرخ هر بستند و یک طول خرس و یکصد نفر دور آتیش نشسته درن کباب میخورند دیو فریاد کشید؟ شما کیستید؟ آدمی زاده هستید یا پری؟ در این وقت روز اینجا چه کار میکنید؟ طول خرس بدون اینکه حرفی بزنه چوب دستی خودش رو دور سر گردوند و اون دیو رو هم بیهوش کرد و کشون کشون به چهلومین چرخ اررابه بست. با طلوع صبح روز بعد طول خرص اون چهل دیو رو مجبور کرد که برن و درختای جنگل رو بندازن و یکصد اررابه رو پر از هیزم کنن. دیوها وارد جنگل شدند و در عرض یک ساعت تمام اررابه ها رو پر کردند. طول خیرس عرابه ها رو به هم متصل کرد و چهل دیو رو نیز به عرابه جلویی بست و خودش نیز سوار شد و دیوها رو واداش تا مانند اسب و گاو عرابه رو بکشن یکصد عرابه رو نیز روی بقیه ارابه ها نشسته بودن سفر از کوه هفت قله به پای تخت سلطان معمولا 99 روز طول میکشید ولی چهل دیو این سفر رو هفت روزه تمام کردند به سلطان خبر دادند که طول خرس در حال برگشتن سلطان یکی خورد و به وحشت افتاد چرا که طول خرس یک بار دیگه بلای جون اون میشد و با حراس به زیر دستای خودش دستور داد تا سر از تن ساهره پیر جدا کنند چرا که او اطمینان داده بود که طول خرس از جنگل هفت قله کوه جون سالم به در نمیبره طول خیرس ها رو وارد قصر رو کرد و بار هیزم رو خالی کرد بعد چهل تادی دیو آزاد کرد تا دوباره به جنگل برگردند سپس خودش نزد سلطان رفت و گفت که یکصد ارابه هیزم مورد نظر رو آورده سلطان در ظاهر خودش رو خوشحال و نشون داد، در حالی که در باطن خیلی ناراحت بود روز بعد سلطان دستور داد تا ساهره دیگری رو به حضورش بیارن و از او بپرسه که آیا میتونه طول خرس رو به جای بفرسته که بازگشت از اونجا سر نباشه؟ این یکی ساهره جواب داد سلطان فرنگستان دختر زیبایی داره از طول بخواهید تا اون دختر رو برای شما بیاره هرکس برای این منظور به اونجا بره سالم بر نمی گرده. سلطان اندرز اجوزه رو پذیرفت و طول خرص رو احضار کرد و گفت از نمی خواهم که به سرزمین فرنگ بروی و دختر سلطان فرنگ رو به اینجا بیاوری تا با هم ازدواج کنی تول خرس گفت اطاعت میکنم کنم قربان روز بعد به محض اینکه خورشید طلو کرد طول خرس عازم فرنگستون شد همچنان پیش میرفت رفت تا اینکه پس از مدتی مدید مردی رو دید که به هر یک از پاهایش سنگ آسیایی بسته شده ولی با این حال با چنان سرعتی میدوید که آهو نیز به گردش نمی همین که چشم اون مرد به طول خرس افتاد گفت کجا می دوست من؟ طول خیرس جواب داد من آزم فرنگستان هستم از و قصد دارم دختر سلطان اونجا رو برای سلطان خودمون ببرم اون مرد عجیب گفت ممکنه منم با خودت ببری طول خرس جواب داد چرا که نه چه بهتر که با هم به سفر ادامه بدیم به این ترتیب اون دو باز به راه پیمایی پرداختن تا آنکه به مردی رسیدن که در دریاچه ایستاده و مشغول نوشیدن آب بود به طوری که تمام آب و سر کشیده و گفت آه دارم از تشنگی میمیرم و با دیدن طول خرس و همروهش پرسید به کجا میروید؟ ممکن است منم با خودتون ببرید؟ طول خرس جواب داد بله دوست عزیز چه بهتر که سه نفری به سفر بپردازی به, به این ترتیب اون سه نفر به راه افتادند تا اون که به آسیای بزرگی رسیدند وارد آسیا شدن و چشمشون به آسیابانی افتاد که مشغول آسیا کردن گندم بود ولی هرچه که آردن کرد مشت مشت به دهان میریخت و میخورد و باز هم میگفت آه دارم از گروسنگی ای می می کاش به حد کافی غذا میخوردم مسافرین بهش گفتن روز بخیر آسیابان آسیابانم گفت روز بخیر دوستان شما کجا میرین؟ خرس گفت ما حازم فرنگستان هستیم تا دختر سلطان فرنگ را برای سلطان خودمون ببریم آسیابان پرسید میشه منم همراه خودتون ببرین؟ اچه خرس گفت بله البته بیا بیا تو چهار نفری به سفر بریم به این ترتیب اون چهار نفر به حرکت ادامه دادند تا اینکه به مردی رسیدند که دراز کشیده و گوش خودش رو روی زمین گذاشته بود و با خودش حرف میزد. مسافرین گفتند سلام مرد دانا اون مرد گفت: سلام بر شما کجا می روید؟ بچه خرس گفت ما به فرنگستان میرویم تا دختر سلطان اونجا رو به عقد سلطان خودمون در بیاریم مرد دانا گفت، منم با خودتون میبرین؟ غیرس جواب داد، بله، چرا که نه دست جمعی سفر کردن بهتر از تنهایی و کم عده بودنه هر پنج نفر به راه خودشون ادامه دادند تا به مردی رسیدن که مشغول ساز نواختن بود و اون تارزن با چنان مهارتی ساز میزد، که تمام درخت‌ها به رقص می اومدن و پرنده‌ها برای شنیدن صدای سازش جمع شده بودن مسافرین گفتن روز بخیر تارزن جواب داد روز بخیر قصد کجا دارید؟ بچه قرص مقصد خودشونو گفت و تارزن گفت منم با خودتون می‌برین. بچه خرص گفت بله البته توزه هممونم از تار زدن تو کلی لذت میبریم ششتا مسافر با هم به راه افتادن تا به مردی رسیدند که کوهی رو روی پشتش قرار داده بود و به نقطه دیگری میبرد و به زمین میگذاشت اونگاه دوباره کوه رو بر و سر جای اولش بر مسافرین گفتند خدا قوت پهلوون. پهلوون گفت متشکرم شما آزم کجا هستین به فرنگستون میریم پهلوون کوهکن گفت ممکنه شما رو همراهی کنم اونام قبول کردند بدین ترتیب عدهٔ اونا به هفت نفر رسید که عبارت بود از طول خرس دونده سریع آسیابان همیشه گرسنه مرد دریاچخور مرد دانا تارزن و کوهکن اونا به فرنگستون رسیدند و مستقیما به قصر سلطان رفتند و در زدند دربون در و باز کرد و گفت چه می خواهید؟ بچه خیرس گفت ما قصد داریم که سلطان رو ببینیم دربون نزد سلطان رفت و گفت که هفت موجود عجیب و غریب. قصد دیدن شما رو دارن آیا باید اونا رو به داخل راه بده یا خیر؟ سلطان جواب داد بلی بگذار داخل شوند تا ببینیم که کیستند و چه میخواهند درون دربون اون هفت نفر رو به داخل راهنمایی کرد و طول خیرس مقابل سلطان ایستاد و گفت عمر سلطان دراز باد. ما آمدیم تو دختر شما رو با خودمون ببریم و اگر رضایت بدین خیلی ممنون میشیم وگرنه یعنی اونو به زور با خودمون خواهیم برد. سلطان جواب داد من دخترم رو در اختیار شما خواهم گذاشتم ما به سه شرط و اگر شما موفق شوید دخترم همراه شما خواهد آمد و یرنه یعنی خواهید شد بچه گفت بسیار خوب موافقیم قربان. و اگر موفق به انجام شرایط شما نشویم خودمون رو در اختیار شما قرار میدیم تا هر کاری خواستین با ما بکنین سلطان به جارچیاش دستور داد تا همه به خونه‌ها سر زده و از همه کس بخواند که کاسه قضا برای مهموناشون بیارن و به کلیه نونواهای سرزمینش هم دستور داد که تمام روز رو مشغول پختن نون بشن و به قصر بیارن تا هفت مهمون موفق به خوردن اون همه غذا نشن و محکوم بشن تمام زنای خوندار بر حسب دستور سلطان کاسه غذا به قصر بردن فنون و نونواها نیز تمام روز رو با صورت هرچه تمومتر مشغول پختن نون شدن و اونقدر نون تهیه شد که کفاف یک هزار تن رو میداد اما هفت میهمان به خصوص آسیابان همیشه گرسنه تمام اون غذا و نون و خوردند و باز اظهار گرسنگی کردند سلطان که به وحشت افتاده بود نقشه دیگری کشید تا شاید بتونه از سپردن شاهزاده خانوم به اون عده خودداری کنه و گفت در دره هفتگو چشمه لایزالی هست و من یکی از افراد خودم رو به اونجا خواهم فرستاد. و شما نیز یکی از افراد خودتون رو به اونجا بفرستید. هر کدام از اونها که مقداری از آب چشمه رو زودتر بیارن برنده خواهند بود بچه با وافقت کرد و دونده سریع رو فرا خوند و گفت از تو میخوام که به هفت چشمه کوه بری و مقداری از آب چشمه بیاری ولی با آخرین سرعت خود ترکت کن اون مرد جواب داد این کار ساده ای همینقدر کافیه که سنگهای آسیا رو از پای خودم باز کنم درست مثل سریع ترین اسب که به سوی اون چشمه حرکت میکرد در عرض دو هفته به اونجا رسید و برگشت اما حقیقت امر اینکه سلطان یکی از افراد خودش رو هفته قبل به اون چشمه فرستاده بود تا آب لایزال رو بیاره اما این موضوع رو به هیچ کس نگفته بود به هر حال دونده سری سنگ های آسیا را از پاش باز کرد و شروع به دویدن کرد و در طول راه با قاصد سلطان برخورد نمود که در راه بازگشت بود. ولی خودش رو به چشمه رسوند، کوزش رو پر کرد و بدون اون که قطری از آبش بریزه، زودتر از قاصد سلطان به قصر برگشت. سلطان از این موضوع سخت حیرت کرد. و مصمم شد که آخرین تلاش خودش رو هم انجام بده پس گفت حال که شما در دو شرط اولیه برنده شده این فقط یک شرط باقی میمونه که اون هم شرط ساده ایه پس از انجام اون دختر رو بردارید و برید من دستور دادم که حمام مخصوص رو برای شما گرم کنند و بعد شام رو با ما بخورید و دست دخترمو بگیرید و ببرید طول خرص و همراهاش به خزینه سلطنتی رفتند اما سلطان قبلا دستور داده بود که خزینه را اونقدر داغ کنند که میهمانا به محض ورود به اونجا بجوشند و کشته بشن. هنگامی که طول خرص متوجه شد خزینه مثل آتیش داغ شده و دیوارهاش سرخه از دریاچخور خواست تا بر آب بدمه و اون رو خنک کنه. دریاچخور شروع کرد به دمیدن به در و دیوار و اونا رو خنک کرد به طوری که آب نیم گرم شد و اونها در نهایت راحتی خودشون رو شستند. هفت دوست سپس به قصر سلطان رفتن و شام رو با سلطان صرف کردند. سلطان که از شکست خودش ناراحت شده بود و راه ای نداشت مخفیانه دستور داد تا اونها ظروف مهمانا رو به سماقشته کنند تا پس از خوردن قضا بمیرند و این بازی تموم بشه پس از اون که همه دور میز نشستن مرد دانا گوش خودش رو به میز گذاشت و فورا دریافتی قضا مسمومه پس در گوشی به دوستانش گفت که از اون غذا نخورین که پر از زهره تارزن با شنیدن این حرف ساز خودش رو برداشت و چنان آهنگ دلنوازی نواخت که سلطان همسرش و دخترش و تمام حضار از جا بلند شدند و شروع رقصیدن کردند و دوستان جای ظروف غذا رو عوض کردن به طوری که ظرف های مقابل سلطان و زرا و سایرین قرار گرفت ولی یکی از اون ظرف هم اشتباهاً مقابل طول خرص گذاشته شد بعد از مدتی که این کار انجام شد تارزن ساز خودش رو زمین گذاشت و همه شروع به خوردن غذا کردند. سلطان لغمه ای رو در دهانش گذاشت و بیدرنگ نقش زمین شد و جان داد. پنج نفر دیگه هم به همین ترتیب هلاک شدند که طول خرس بیچاره هم به سرنوشت اونا دوچار شد. هنگامی که چشم همسر سلطان به این صحنه افتاد، اون هم از شدت حراس و ترس قالب توهی کرد. اما شش دوست بر سر جرازه طول خرس زاری و شیونگ کردند اما ناگهان طول خرس از جای خودش برخاست ولی نه به صورت قبلی به دین شکلی که به جای طول خرس جوانی رعنا و خشقد و قامت سر پای ایستاد و چون چشم شهزاد خانم به او افتاد یک دل نه صد دل عاشقش شد و همون جا با هم ازدواج کردند و معلوم شد که اون جوان اسیر تلسمی بوده که اون زهر باطل کننده اون تلسم بوده این هفت دوست ما تمام سپاهی های سلطان رو شکست دادند و کوهکن در این نبرد خدمت بزرگی کرد و همه قشون رو تارمار کرد و جوون رهنا شد سلطان فرنگستان و شش دوستش رو نیز بعنوان عنوان و مشاورینش به کار گره. به پایان این داستان رسیدیم امیدوارم که از شنیدن این قصه لذت برده باشید و در مورد هدف و منظور و مقصود واقعی این قصه کمی فکر کنید و ببینید که چی میخواست بهمون بگه تا برنامه ای دیگر و قصه ای دیگر خداوند مهربان یارو نجات